حکایت ملک ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب روی باری پدر به کراحت و استحقار در او نظر می کرد. پسر به فراست و استبسار به جا و گفت ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر اشات و نظیفتون ولفیل و جیفتون اقل و جبال لعرضه تورون و انهو لعظم و الله قدرن و منزلا شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه اسب تازی و بود، همچنان از طویگلی خر به، پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند و برادران به جان برنجیدند، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، هر پیسه، گمان مبر نهالی باشد که پلنگ خفته باشد هر بیشه گمان مبر که خالی است باشد که پلنگ خفته باشد شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی سعب روی نمود چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند اول کسی که به میدان در آمد، این پسر بود. گفت، آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری، کن که جنگ به خون خیش بازی می کند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری، این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنیچند مردان کاری بینداخت. چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای که شخص منت حقیر نموند تا درشتی هنر نپنداری از به لاغرمیان به کار آید روز میدان نگاو پرواری آوردند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک، جماعتی آهنگ گریز کردند، پسر زد و گفت، ای مردان بکوشید یا جامع زنان بپوشید. سواران را به گفتن او تحور زیادت گشت و به یک بار حمله آوردند، شنیدم که هم در آن روز بر دشمن زفر یافتند. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولی خیش کرد. برادران حسد بردند و زهر در تعامش کردند. خواهر از غرفه بدید. دریچه هم زد. پسر دریافت و دست از طعام آم کشید و گفت، محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران ایشان بگیرند. کس نیاید به زیر ساگه بوم و همای از جهان شود معدوم پدر را از این حال آگهی دادند. برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب بداد. پس هر یکی را از اطراف بلاد حسهی معین کرد تا فتن بنشست و نزا برخواست که ده درویش در گلیمی بخصفند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بزد درویشان کند نیمی دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر.